فصل نهم وقتی آساتور برای نهار بالا آمد اسماعیل میز نهار را چیده بود و با دیدن او مانند سگی که دم خانه صاحبش به آدم ناشناسی نگاه کند او را از زیر چشم برانداز میکرد و میخواست بداند که آیا اربابش بوی آدم ایزاد دیگری تو خانه شنیده یا نه و دلحوره این را داشت مبادا صدایی از تو سرپله بلند شود و آساتور بو ببرد اسطور مثل همیشه خیلی آرام یک راست رفت به طرف گنجه کوچکی که تو دیوار فرو رفته بود و یک بطر شراب نصفه برداشت و گذاشت رو میز میز برای دو نفر چیده شده بود اسطور گرفته و اندیشناک بود سرش میان شانه هایش فرو رفته بود محمد از تو سرپله شنید زود هرچی داری بیار که امروز هم خیلی گشنمه و هم خیلی کار داریم همین حالا هفهشتاد تا صندوق جنس میارن که باید بیای پایین بازشون کنی هرواب مگه مهمونتون نمیاد؟ نه یه کاری براش پیدا شده آدمش فرستاده بود که نمیتونه بیاد تو میدونی که هایک صاحب مهمون نیست اینجا خونی خودشه هر وقت دلش خاص میاد و هر وقت خاص میره پس این همه ماهی که خراب میشه، هوا خیلی گرمه عوضش ما خیلی گشنمه به خدا آقا منم همینطور اینطور، دلم از گشنگی قش میره و دروغ میگفت و دلش از گشنگی قش نمیرفت دوتا بستته؟ زیادم هم هست آقا و نوکر هر دوشان یک فکر تو سرشان بود از این ماهی یکیش برای محمد و ایچ کدام نمیدانست که دیگری چه فکری میکند آن وقت آساطور گفت: بردار ببر تو دکون بشین بخور. ممکنه صندوقا را بیارن. می‌خوام اونجا باشی که زمینشون نزنه خوردشون کنه. چون تا از صندوقا ویسکیه. همونجا باش تا خودم بیام پایی. محمد حرفها رو میشنید و بوی لذیذ ماهی که از مدتی پیش تو دماغش بود، آب به دهنش انداخته بود و آرامشی درونش راه یافته بود که راجب آن تنگسیری که چند تا آدم زده بود و فرار کرده بود، حرفی نزده بودند رفت تو نخ کاری که کرده بود و پاهای سنگینی که تو کوچه ها پیشا پیش جمعیت رو زمین می کشید و از یک خانه به خانه دیگر می رفت و چهره پیشواز مرگ رفته ی آغالی کچل و قش کردن زن او و پخش شدن ظرف آب هندوانه رو زمین و چهره مردمی که دنبالش بودند و سیدی که تو کارش دویده بود و ازش خواسته بود که تفنگش را رو زمین بیندازد و دو زنی را که با تبر زده بود و یکیش مرده بود و یکیش زخمی شده بود و بعد نگاهش به گنداغ گونه توفنگش افتاد و سرش را به چپ و تکان تکان داد و از صورتش باز و بسته شد از خوابی که دیده بود چیزی یادش نمی آمد اما خاطرش سنگین و تاریک بود حس کرد که دیگر از زندگی چیزی نمی خواهد هیچ امید و آرزویی نداشت خورهی که این چند زورگو و گلدور تو قلبش گذاشته بودن التیام میافته بود راجب فرار خودش هم فکر نمی کرد پس از انتقامی که کشیده بود دیگر دلش از آرزو تویی شده بود و چیزی نمیخواست اگه گیرشونم بیافتم به درک من کار خودمو کردم همین چل چل و سال زندگی آبرومند بهتر از صد سال زندگی با ننگ و سر به زیریه تا صدای پا تو پلکان پیچید فکرش هی خورد و نگاهش به سوک دیوار آنجا دوید و توفنگش را جا به جا کرد. اندام خمیده و به گور شده آساتور سر پلکان پیدا شد. محمد نیم خیز شد با چهره کتک خورده روپاهاش ستون شد و کاسه آب و دوری خوراک را از دست آساتور گرفت. پشت دوری گرم بود و پوست دستش به مورمور افتاد، و آبی را که تو دهنش جوشیده بود غرد داد و با چهره شرمسار و سپاس گفت، ارباب خیلی ببخشین که زحمتتون میدم. خدا مرری و بتونم تلافی کنم. نگاهش کوتاه بود و فوری رو دوری ماهی افتاد و دیگر نخواست به آساطور نگاه کند. از سروش خجالت میکشید نمیدانست چه کار کند. همچنان ایستاده بود و دوری و کاسه آب تو دستهاش. سنگینی می کرد بو و بخار ماهی بینیش را غلغلک می داد. حالا وقتی این حرف است، نیست باید زود برم پایین نکنه این پسر بویی ببره یه کاری کن سروسیده ازت در نیاد این پسر شبا میره خونشون. وقتی رفت خودم میان بالا خبرت می کنم. از جات هیچ کن نخور تا خودم میان بالا بهت بگم که کی وقتشه خیلی بد شد که شب شب مختابه باید خیلی مواظب به خودت باشی دو همه کوچهات و چی گذاشتن راستی کاسه آب و ظرف را تو اون صندوق تا خودم بعد بیام ببرمشون رو این پسره نبینه و به صندوق اشاره کرد باز محمد تنها ماند حرفهای آسطور تو کلش سر و ته می شد راست می گفت. شب محتابی بود و محمد یادش نبود و حالا یادش افتاده بود. نشسته بود و داشت می‌خورد. وجود آساتور را تو اتاق پایین حس می‌کرد. دلبش از لغمه گنده‌ای که تو دهنش تپانده بود برآمده بود. تمام صورتش تکان می‌خورد و چشمانش رو زمین وق زده بود. یادش اومد زمانی را که تو کشتی پرسپولیس کار می‌کرد و هر هفته خشکی و از آساتور برای کشتی جنس تحویل می‌گرفت. شیشه های رنگارنگ مشروب و قوطی‌های کنسرو و شیرینی و بیسکویت و توتون و سیگار از آساتور برای فرمانده کشتی می‌گرفت و آساتور خیلی از او خوشش می‌آمد و هر وقت برای تحمیل گرفتن جنس می‌آمد یک شیشه شیرینی یا یک قوطی شکلات به خودش می‌داد. آن وقت‌ها بیزن و بچه بود و آزاد بود و همه جا جاش بود. هر کاری را که پیش می آمد می و هر وقت دلش زده می آن را ول میکرد و میرفت دنبال کار دیگری. با غباس های بوشهری تو خلیج مروارید زید می کرد. نفس او را در غاوس هیچ کس نداشت. آن وقتها پابند کسی نبود. دریای نیلی خلیج زیر پاش بود. با عرب و عجم زندگی میکرد. همه جا یک لقمه نان و خرما و مای شور پیدا می شد که شکمش را سیر کند. شبهای تابستان بیپوشن تا صبح روی ماسه های درخشان خارک و خارگو می خوابید توشکش ماسه و بالاپوشش نور ماه و ستارگان بود از هر جا خوشش نمیآمد، پامیشد پا می شد می جای دیگر یک علف آدم بود و دریا و خشکی زیر فرمانش بود حالا آلوده شده بود هیچ وقت به فکرش نرسیده بود که کارش به اینجا بکشد که راه بیفتد تو بندر و برای خاطر پول پشت سر هم آدم بکشد. نه غیر از این چهاره نداشتم. وقتی آدم هیچ بریاد رسی نداره چه بکنه؟ آبرون رفته بود. چرا حقم به ندادن؟ آخرش حقم با خونشون از تو جونشون بیرون کشیدم. هرچه میخواد بشه. آدم یه دفع زندگی میکنه. مرگ یه دفع شیون یه دفع. صدای طرق اتورغ باز شدن صندوق ها وجیغ های که میخای زنگ زده گاه بیرون آمدن از تو تخته ها میکشیدند از دکان آساتور تو گوشش میخورد دیگر وجود آساتور را تو اتاق پایین حس نمیکرد میدانست که او هم تو دکانش رفته دیوار کلافی میان خودش و زندگیش حایل می میدید شکل صورت شهر و بچههایش از یادش رفته بود گویی سالها بود آنها را ندیده بود. اگه حبسم کنن تو حبس میمیرم من که نتونم یه روز تو این سربله بند بشم چطور میتونم تو حبس بمونم خداگونه وقت فرارم کسی جلوم نیاد من با کسی دشمنی ندارم نمیخوام خونه کسی ریخته بشه اما اگه خواستن دست از پا خطا کنن تا تیر آخر باشون میجنگم چقدر روز تابستون درازه دیشبم دراز بود همشب درازم هم روز روزهای دیگه اینجور نبود ظهر که میشد کمر روز میشکس حالا از ظهر خیلی گذشته آفتاب تو آسمون کج شده اما خیلی مونده بره تو دریا تا کی باید اینجا بمونم دارم دق میکنم برم برم از اینجا توی شهر غریب زندگی کنم اما من اینجا رو خیلی دوست دارم اینجا خونی منه کسی از خونی خودش قهر میکنه یه گردن گیر پاچه برمالیده بودن که منو به زور از خونم بیرون کردن من شهرم و خونم رو دوست دارم اینا بودن که این سرزمین آب و اجادیم رو پیش چشمم مثل لته حیث کردن که خدا ازشون نگذره. کاسه خالی آب و دوری را تو همان صندوقی که آساتور گفته بود و قایم کرد و همان کلاه لگنی زهفار در رفته را روش سرپوش گذاشت هیچ اهمیت نمیداد که اسمایل ظرفها را ببیند یا نبیند میدانست اسماعیل اسمایل می که او آنجاست و براش فرق نمیکرد کرد که پس از فرارش ارباب و نوکر هر دو به هم بگویند که او آنجا بوده یا نبوده اما می خواست آنچه که گفته بود عمل کند ناگهان لرزی تو خودش حس کرد یکی از پلکان بالا می آمد. نرم و یواش مثل گربه پاور می داشت پاشد و ایستاد و تفنگش تو بغلش خوابیده بود چشمانش دنبال شکاف درجه و مگسک توفنگ رو پله دوخته شده بود هزار جور فکر تو سرش دویده بود اسماهیل بود که آرام از سوک پله نمایان شد و یک چیزی تو دستش بود توفنگ از آغوش محمد پایین اومد و با خشم پچ پچ کرد چی میخوای؟ برای چه اومدی بالا؟ یه لقمه نون و ماهی برات آوردم، بگیر بخور گشنته کمه، باید ببخشی، اما کاچی به ازی چیه؟ لاشیته که ماهیه نیفته، حتما خیلی گشنته اسماعیل میخندید و از کار خودش خیلی خوشش آمده بود. محمد نان پیچه را از اسماعیل گرفت. دلش میخواست او را تو بقلش بگیرد و ماچش کند. شرمساری و فروتنی اسماعیل او را سرفکنده کرده بود. نه و چه خوبیه شیرپاک خورده. باز پش, پش کرد. دست درد نکنه. نمیخواست زحمت بکشی. اسماعیل هولکی گفت. من باید زود برگردم برم پایین پیش ارباب نکنه بو ببره من اومدم پیش تو میخواستم بهت بگم که امشب ارباب خونه یه مهمون و ازتر شب میره اما من بر میگردم پیش تو تو باید در کوچه رو رو من باز کنی اگه ارباب بخواد بیاد تو خودش گلید داره من میام سه در میزنم و تو در روم باز کن محمد با تشویش گفت خدا عوضت بده تو چه شیروباک خورده یاسی اما لازم به اومدن تو نیست من نمیخوام تو تو زحمت بیفتی من خودم سر موقشتر رو واز میکنم میرم جوانک دست باچه گفت آخر اگه تنها باشی رات خطر داره یکی باید باشه که تو کوچه ببینه کسی نباشه محمد آرام و مطمئن گفت نه من اگه خودم تنها باشم بهتر میتونم حواسم را جمع کنم اما اگه یکی دیگه هم باشه باید اون را هم بپام هرچی میگم بهت گوش کن من پام که تو کوچه رسید خودم را و جار رو بلدم. پسرک درخور شد و چیزی نگفت و سرش رو انداخت زیر و پاورچین رفت پایین. با باز محمد تنها بود. اتاقه که سرپله از نور خورشید رنگ و رنگ میشد. یک تکه آفتاب که میافتاد یک گل جای محمد خیره به آن نگاه میکرد تا جاش عوض میشد. باز یک لکه نور دیگر جای دیگر میافتاد و محمد به آن خیره میشد. و چشم نمیزد آن لکم میپرید دلش میخواست دیگر لکه آفتاب دو سرپله نیفتد مثل اینکه تمام خردریزها و انزرپنزر های اتاق سرپله از زیر زربین بین درشتی پت و پهن و گود و طلم میشد دلش میخواست هرچه لکه آفتاب آنجا بود نابود میشد و تاریکی سر جاشان می نشست. گیجی و فرسودگی سنگینی در خود میکرد هنوز کار زیادی در پیش داشت کاش که همین حالا پا می شدم میزدم به کوچه خسیلی ماندن اینجا را ندارم پام که تو کوچه برسه باز آدم اولی میشم. اینجا دارم خفه میشم من از مرگ نمیترسم. ترسم مثل خواب میمونه. مونه اگه از مرگ میترسیدم دست به این کارا نمیزدم. زدم مثل پیر تو خونم می نشستم نال ازاری می خدایا کاش کی زود شب می و سیایی می اومد و دید چشما کم میشد. من چرا اومدم تو خونه ی من کمچو خیالی نداشتم. خونش مثل یه نقد جلوم سبز شد و گرگ دنبالم کرده بود. از زور ناچاری ازش رفتم بالا. هنوز گرگا زیر نقد دارم پرسه می سایه و روشنی از خوابی که دیده بود تو سرش افتاد و ذهنش را روشن و خاموش میکرد و علت آن را نمیدانست. تو دلش تلخ بود. نانپیچه ای را که اسماعیل داده بود بازش کرد. یک ماهی علوای مچاله شده که چشمش از کاسه سرش پلوقی بیرون زده بود و زل زل به محمد نگاه میکرد میان نان بود و یک کشمش سیاه باد کرده خشک مثل زگیل روش چسبیده بود ماهی له و لورده شده بود مثل اینکه گوشتش را جویده بودند و بعد از دهنده را بودند و آن را دور خارهای نازکش بند کرده بودند دلش آشوب افتاد لای نان را هم گذاشت و آن را گذاشت رو زمین پیش پایش. ناگهان شکمش پیچ افتاد و منظری آبریز که اتاقه که کوچکی بود و تو پله در کوچه دهن باز می کرد، تو سرش نقش گرفت. خودش را جمع کرد که پیچ شکمش را بکشد. اما پیچ بیشتر شد و باد دردناکی تو دلش پیچید و کلافهش کرد. همه چیز از یادش رفت. موج درد درونش را به تراتوم انداخته بود. این طرف و رو را نگاه کرد، آنجا جاش نبود، گذشته از این، اگر آساتور یا اسمایل بعد از آن که او رفته بود آن را آنجا می دیدند، توفلع نتش می کردند. خواست کمی صبر کند ببیند چه می شود، اما رودهاش به جوش افتاده بود، نمی توانست سر جاش بند بشود، تو خودش پیچ و تاب می و بوی سوزندهی که ازش بیرون جسته بود، بینیش را ریش کرده بود. شتاب زده رو برداشت و را براشت از پله ها شد. تو راهرو صدای حرف اسور رو اسماعیل از تو دکان به گوشش میخورد. هیچ در فکر آن نبود که اگر کسی او را ببیند چه خواهد شد؟ برایش فرق نمیکرد. ناچار بود برود کارش را بکند. تو راهرو تاریخی تر بود. آنجا دیگر آفتاب نبود، اما نور خاکستری آفتابی که تو جاده غرب افتاده بود تو راهرو دویده بود. از پله که به در کوچه میخورد پایین رفت، و در آبریز را باز کرد به همون آهستگی که رفته بود باز به اتاقه سرپله برگشت و سر جایش نشست سبک شده بود راحت شده بود آفتاب غروب کرده بود و حالا همان نور خاکستری که تو راه رو بود به سرپله هم راه باز کرده بود بطری های خالی و هنزر پنزر های در تیرگی و خاموشی رنگ وارنگ می شدند ناگهان دلش برای زن و بچه ها شروع افتاد حالا اونا چیکار میکنن؟ میکنند؟ شهرو زن آخریه گفتم شب میام شب خیلی درازه لابود خواب به چشم شهرون نمیروه و همه چشم میمونه شاید اصلا پام دیگه تو دواس نرسه کاشگه این حالا پاشم برم اما حالا کجا از همیشه شلوغتره همه از کارشون برمیگردن؟ بهش گفتم شب میام حالا که شب نیست وقتی که مهتابه که شب نمیاد از بد وقتی شبی که ما رفتیم دوزی ما در اومده لبخندی رو خندهی که تو صورتش غالب گرفته بود چفت شد پاشد و از شیشه کوچکی گرد و باران خورده مات در بام به بیرون نگاه کرد هنوز بیرون روشن بود آفتاب تو دریا گم شده بود و حرم خونین آن تو پیشانی و افق داغ گذاشته بود خیابان کنار ساحل خلوت بود گاهی یکی دو نفر رد می شدند یک تفنگچی که تفنگش تو دستش بود از پیش دیدش رد شد توفنگ فلیس داره توفنگی خوبی نیستن فشنگ توشون گیر میکنه اما اگه نو باشن بردشون از توفنگ من بیشتره نمیشه حالا برم معلوم میشه راستراسی خیالی برام دارن کشه هاش هرکی هر کاری داره گذشته برای حالا که هوا خونک میشه اما اسماعیل گفت که اعلان کردن که از تر شب مردم نباید دیگه تو کچه ها پیداشون بشه دریا خوب آرومه مثل روغن از جوش افتاده میمونه چقدر هوا برای ماهی گیری خوبه خدایا یعنی میشه که من باز تو این دریا شنا کنم و باز توش ماهی بگیرم اما نه این دریا دریای دیگه جای دیگه هم دریا هست باز سر جایش نشست کلافه بود و نمیدانست چکار چه کار کند دلش میخواست حرکت کند سکون آرامش دلش را خورد کم کم چشم روز کور میشد. سرکله یک موش گنده که قد یک بچه گربه بود پیدا شد که خودش را از لای سندوخا بیرون کشید و یک راست و بی پروا بوکشان به طرف نان و ماهی که رو زمین افتاده بود رفت محمد تکان نخورد معلوم میشه غیر از من اینجام بازم نونخور هست. بلکه امروز چطور ولیمه داده. اما این موش روزای دیگه چیکار میکنه؟ چه میخوره؟ اینجا که هر روز نون و نیست. تو بوشر موش هست که با گربه دعوا میکنه و کشتی می‌گیره و گربه را فراری میده. موش گوشه نان را گاز زد و اون را رو زمین به سوی خودش کشید. ناگهان دوتا بچه موش و یک موش قحفه‌ای چرب گنده که از موش ابلی یوغورتر بود دور نان و ماهی سفز شدند و به آن حمله کردند چشمان درشت سرخگونشان تو نور مرده غروب سوسو میزد. صدای کروچ کروچ دندانشان روستقانه های محمد میخورد و چنده شش میشد. وقتی آدم رو تو گور می همین میان گوشتتن آدم را به یه چشم به هم زدن میخورن. اینا که کوچیکن؟ هن تو قبرسون قده گورکن هستن از اون موشهایی که به خرمن میزنن. به نظرم اینا زن و شوورن. اونا هم بچه هاشونن، اونا هم مثل من اون شهر رو دو دو بچه دارن. دلش مالش رفت و چشمانش همانطور رو موشها افتاده بود. صدای هرفاساتور اسمایل تو راه رو بلند شد و هوا تاریک شده بود و نور سرخ چراغ راه رو قاطی نور رنگ پریده محتابی که تو سرپله میتابید شد. موشها هنوز داشتن تهمانده نانو ماهی را میبلیدند نکاس مرده نور چراغ راه رو آنها را فرار نداده بود. محمد شنید؟ من امشب بخمنی میمونم. همین حالا های درشگش را میفرسته اینجا که من را ببره. شب همونجا میخوابم. تو هم برو بگیر تو خونت بشین و تو فردا صبح از خونت در نیا. میدونی که اگه گیر تو فنکیا یا شب گرد را بیفتی پوستت میکنن. من تو کوچه کاری ندارم. اینقدر این صندوق ها خستم کردن که تا رفتم خونه مثل مرده میافتم بعد ناگهانی پرسید. ارباب اگه اجازه بدی من میتونم امشب اینجا بخوابم. شب خوب نیست تو خونه کسی نباشه. نه، امشب چهر شلوغه مادر تو خونه تنهاست. شاید تیروت و فنگی در بره. پروش باشی بهتری. گذشته از این راه زده امنه. امشب دیگه کسی دوزی نمیاد. چهش؟ هرچی شما بگی. بله کسی اینجا نمیاد. من یه شایی پول تو خونه نگه نمیدارم. هرچی پول فروشه میدم بانک. هر کی بیاد اینجا بخواد خواد بکنه خیلی که ببره چند قوطی خوراک و چند بطر مشروبه. از اینجور دل دوزیام که کسی نمیکنه. هوا تاریکه. اگه اجازه میدی من برم. برو خدا به هم راد. محمد صدای در کوچه را شنید.